عزیزان خوشحالم که باز هم تصمیم گرفتید در درس دیگری از دانشکده کوچای که کتاب مقدس با ما همراه راه باشین. زمن بررسی خودمون در جلسات قبل به کتاب های اول و دوم سمویل رسیدیم و زندگی داوود پادشاه رو بررسی میکنیم. چیزهای زیادی هست که میتونیم از این مرد یاد بگیریم که خدا او رو مردی با قلبی خداجو خوانده. اگرچه داوود مرد خدا بود با این حال به گناه افتاد و وقتی افتاد زندگیش به عبرتی تبدیل شد چون دیدیم که یک مرد بزرگ خداوند هم میتونه سقوط کنه پس ما هم میتونیم بیافتیم با دقت گوش کنید که وقتی داوود با گناهش مواجه شد شواکنشی نشون داد وقتی وواکنش شایسته نشون داد زندگی اون برای من و شما تبدیل به سرمشقی شد این شما و این معلممون باز هم وقتشه که کتاب مقدستون رو بردارید و در درس دیگری از کلام خدا با ما همراه باشید ما به هشداری که در دوم سمایل درباره نحوه گناه داوود وجود داشت با هم نگاه کردیم می‌خویم یک جلسه دیگر رو به موضوع گناه داوود بپردازیم شاید فکر کنید که من بیش از حد بر گناه داوود تاکید میکنم. اما تاکید من به دلیل اینه که کتاب مقدس بر اون تأکید کرده. ما سعی داریم بفهمیم چرا خدا این همه فضا در کتاب مقدس به موضوع گناه داوود اختصاص داده. ما باید درس روحانی رو که خدا میخواد از این بره از زندگی داوود یاد بگیریم. قصد من در این بررسی کتاب مقدس اینه که بر کاربرد حقیقی و عملی تمامی کتابهای کتاب مقدس در زندگی خودمون تاکید کنم. وقتی به هر کدوم از کتابهای کتاب مقدس رسیم، چیزی که به دنبالش هستیم پاسخ به این سه سواله متون کتاب مقدس چی میگن معنی اونها چیه و مفهوم اون برای من چیه یا به عبارتی نقشش در زندگی من چیه معتقدم که وقتی به این بخش از کتاب دوم صموئل میرسم جواب اون سه سوال بیشتر اهمیت داره یکی از مهمترین هایی که میتونیم از داستان گناه داوود ملاحظه کنیم روشیه که داوود برای حل مشکل گناهش به ما ارائه میکنه مائلم که مثالی براتون بزنم ذهن انسان دو بود داره ذهن خداگاه و ناخداگاه همه ما در برخورد با افکار ستیز مشکل داریم در ذهن خداگاهمان ما افکار مثبت خوبی مثل این داریم خداوند شبان است و من نگران نخواهم شد من به شبانم ایمان عظیمی دارم تصور کنیم که در نیم ساعت آینده ما شروع کنیم به نگران شدن در نتیجه نگرانیمون مبتلا به درد و زخم معده بشیم و دکتر بگه که بیماری ما به خاطر نگرانیمون هست. حقیقت اینه که ما نباید نگران بشیم چون که خداوند شبانمون هست. اما ما نگران میشیم. به عبارت دیگه ما در کشمکش هستیم. چطور باید از عهده این افکار ستیز جو بر بیاییم؟ روانشناسان میگن که ما دیواری در لایه میانی ذهنمون میسازیم و افکار خوب و مشوش کننده رو به دو بخش تقسیم میکنیم. در یک بخش از ذهنمون ما ایمان داریم میگیم خداوند شبانه من است و وقتی اینو با خودمون تکرار میکنیم به خودمون اجازه نمیدیم که به یاد بیاریم زخم معده داریم چون که تا حد مرک نگران شدیم در لایه دیگر ذهنمون ما نگران هستیم تا زمانی که نگران هستیم به خودمون اجازه نمیدیم که به یادمون بیاد که ما ایمان داریم که نباید نگران بشیم این منتهی به شیزوفرنی یا جنون روانی میشه این واقعیتی از بهداشت فردیه که هر فکری که ما داریم از زمیر خداگاهمون به زمیر ناخداگاه میره و برای همیشه در اونجا میمونه هر کسی یک حافظه کامل داره درجه یادآوری ما ممکنه خیلی متفاوت باشه اما هر کسی هر چیزی رو به خاطر میاره شما میتونید هیپنوتیزم بشید و اگر از شما چیزی مربوط به 8 سالگیتون بپرسن میتونید جواب بدید خاطرات در زمیر ناخداگاه ذخیره میشن و مانند یک کامپیوتر معجزه‌آسا عمل میکنند اگه در زمیر خداگاهتون یک کشمکش داشته باشید اون به زمین ناخودآگاه شما میره و تا ابد همونجا میمونه شما انباری از مشاجرات رو در ذهن ناخودآگاه خودتون ایجاد میکنید این میتونه مشکلی جدی باشه چون که ذهن ناخودآگاه مانند یک جام هست وقتی که این جام پر از تنش ها باشه شما شروع میکنید به نشون دادن علائم بیماری اون علائم ظاهری بیماری به شما میگن که بهتره که مشکلتون رو حل کنید چون که این کشمکش ها شما را از بین میبرند. کتاب مقدس به ما میگه چطور از اوطه این کشمکش ها بر بیاییم کتاب مقدس در بسیاری از جاها میگه مشکلتون رو حل کنید روانکاوان هم همین چیزها رو به شما میگن چیزی که اونا میگن اینه که شما بیش از حد تنش دارید روانکاوان سکولار به شما راه حل های غیر اخلاقی برای حل مشکلتون ارائه میدن چون بسیاری از اونها پایبند اصول اخلاقی نیستن حتی اگه برای خودشون معیار‌های اخلاقی هم داشته باشند، نمیتونن در مورد دیگران معیارهاشون رو به کار بگیرن. و وقتی پای دیگران به میون میاد، اونها رو داوری میکنند و میگن که اونها مقید به اصول مذهبی هستند. اما به شما میگن که شما شخصا باید تصمیم بگیرید که مشکل تنش رو خودتون حل کنید. اونها خارج از حوزه مذهب میمونند. کلام خدا کلامی اخلاقیه. کلام خدا به ما یاد میده که چه چیزهای درست و چه چیزهای غلط هستند اگر شما معیارهایی برای صداقت و درستی داشته باشید و روش زندگیتون با میارهاتون هاتون هماهنگ نباشه رفته رفته خودتون رو مریض میکنید. اگر بگید خداوند شبان من است و من دنبال گناه نخواهم رفت در حالی که عملاً دنبال گناه میرید و به خاطر هر چیزی نگران میشید، ذهن ناخداگاهتون رو با کشمکش‌ها همباشه میکنید و خودتون رو مریض میکنید. یکی از فرم‌های شدید تنش احساس تقصیر هست. اما احساس تقصیر میتونه چیز خوبی هم باشه اگه شما احساس تقصیر می‌کنید معنیش اینه که شما معیارهایی برای درست کاری دارید و این به این معنیه که شما صداقت دارید احساس تقصیر شما به این معنیه که شما معیارهایی برای درست و غلط دانستن چیزی دارید اما مطابق اون معیارها زندگی نمی‌کنید عیسی اون را اینطور بیان کرده چراغ چشم بدن است. اگر چشم فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. خیلی هستند که در اون نوع از تاریکی زندگی می کنند. بنابرای معیارهای ما، اونها می توانند فاسد باشند و مطلقا احساس تقصیر نکنند و شبها هم راحت بخوابند چون که اونها هیچ اخلاقیاتی در وجودشون نیست. کتاب مقدس در متا 6 و لوقا 11 به ما میگه گه تنش هامون رو اینطوری برطرف کنیم. پس اگر چراغ چشم بدن است، اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. یعنی اگر دیدگاهت درسته و بر طبق اون دیدگاهت زندگی می کنی، تمامی وجود تو پر از نور خواهد شد. کتاب مقدس به ما میگه که ما میتونیم تنشهامون رو با زندگی کردن طبق معیارها و ایمانمون برطرف کنیم. خیلیها سعی می کنند با مشکل احساس تقصیرشون اینطور برخورد کنند که به خودشون بگن هیچ چیز درست و هیچ چیز غلط مطلقی وجود نداره. بنابراین دلیلی برای حس تقصیر هم وجود نداره. این روش حل کردن مشکل احساس تقصیر نیست. داوود به ما میگه که روش حل کردن مشکل گناه اینه که به معیارهای درست و غلط خدا اقرار کنیم. حتی اگر اون معیارها ما رو محکوم بکنه، وقتی به گناهان خود اعتراف میکنیم، خدا جان ما رو تازه میکنه. این یکی از مهمترین کاربردهایی که ما میتونیم از داستان گناه داوود به دست بیاریم و کاربرد دیگه میتونه چنین روی کردی به داستان گناه داوود داشته باشه این یکی از مهمترین کاربردهایی که ما میتونیم از داستان گناه داوود به دست بیاریم و کاربرد دیگه میتونه چنین روی کردی به داستان گناه داوود باشه نویسنده آمریکایی رابرت لوئیز استیونسون گفته دیر یا زود هر شخصی باید بر سر سفره عواقب خودش بنشینه در دوم سمایل یازده تا می بینیم که داوود هم بر سر سفره به گناهش میشینه. سعی کنید اینطور بهش فکر کنید. داستان داوود چیزی رو به ما میگه که کتاب مقدس در بسیاری از جاها میگه. داستان گناه داوود سه واقعیت گناه و سه واقعیت نجات رو شرح میده. اولین حقیقت گناه اینه که اون گناه یک مکافاتی داره. مکافات گناه یکی از اساسی ترین حقایق کتاب مقدس هست. گناه همیشه به مکافات منتهی میشه مکافات آینده و مکافات فعلی به این دلیل که خدا کفواره نهایی گناه رو پرداخت و پسر عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مکافات گناه ما رو بپردازه تنها راهی که میتونیم مکافات آینده گناه را از زندگی هامون رفع کنیم ایمان به مرگ عیسی مسیح بر صلیب و قیام او هست ما با این محکومیتی که همراهمونه به این دنیا اومدیم و تنها راهی که میتونه اون محکومیت رو برداره، ایمان به ایسای مسیحه. هر کسی که ایمان بیاره، دیگه بر اون محکومیتی نیست. اما اگر کسی به عیسی مسیح ایمان نیاره، همیشه محکوم هست. ما از مکافات آینده گناه که جهنمه نجات یافتیم. خود عیسی بر این تاکید میکنه. اگرچه در سه پنجم از مواردی که کتاب مقدس کلمه نجات رو به کار میبره، کلمه نجات به عنوان مکافات آینده گناه پذیرفته نمیشه. در این موارد، اون از رفت شدن مکافات فعلی صحبت میکنه. ما از مکافات زندگی بیهوده نجات یافتیم. زندگی بیهوده بخشی از مکافات فعلی گناه است. وقتی عیسی از جهنم صحبت کرد، عیسی کلمه یونانی گهانه را به کار برد. گهانه محل تجمع خاکروبه ها در خارج از اورشلیم بود. جایی که کرمها هرگز نمی میرند و آتش هرگز خاموش نمیشه. شما میتونید بوی تعفن را از فاصله دور استشمام کنید. وقتی مردم به جهنم فکر میکنند، بیهودگی رو به یاد میارن. عیسی یاد داد که جهنم و بیهودگی مترادف هستند. مکافات فعلی دیگر گناه اصارت هست. مردم آزاد نیستند. عیسی به کررات درباره اسارت گناه صحبت کرده. مردم اون کاری رو که میخوان انجام نمیدن اونا کاری رو میکنند که باید بکنن مردم به اجبار و از روی عادت هاشون کاری رو انجام میدن و این به این معنیه که مردم آزاد نیستند نجات مردم را از اسارتشون آزاد میکنه بنابراین گناه مکافات های خودش رو داره مکافات حال و آینده دومین واقعیت درباره گناه اینه که گناه قدرت داره اگر قدرت گناه میتونه مردی مثل داوود رو از پادر بیاره، پس گناه قدرت زیادی داره. من معتقدم که کل داستان داوود همون چیزی رو به ما میگه که پولس در اول قرنتیان ده دوازده گفته. او اینطور گفته، پس اگر گمان میکنید و استوارید به هوش باشید که نیفتید. در آیه بعدی او میگه هیچ آزمایشی بر شما نمیآید که مناسب بشر نباشد. اگر گناه توانست مردی مثل داوود رو از پا در بیاره شما کی هستید که فکر کنید با قدرت گناه از پا در نخواهید آمد گناه قدرت زیادی داره هرگز قدرت گناه رو دست کم نگیرید سومین واقعیت گناه اینه که گناه کردن بهایی داره حتی در این ایام تورم و گرانی گناه هنوز هم بهای گذافی داره پولس در رومیان 6 23 به ما میگه که مزد گناه موت است منظور پولس نه تنها مرگ حقیقی بلکه منظورش خوردن از سفره عواقب گناه است اون سبزیجات تلخی که گناهکار همیشه مجبور از اون بخوره مزد گناه مثل تصادف قطار در حرکت آهسته است گناه همیشه بهایی به دنبال داره و بهای نهایی اون مرگ هست. یعقوب شعر میده که مرد جوانی که خانه رو برای اولین بار ترک میکنه با ردایی سفید و بیلکه وارد دنیا میشه هدف او اینه که خودش رو اب نگه داره روزی لکهای بر روی لباس این مرد می‌افته و بعد یکی دیگه و بعد یکی دیگه شاید در عرض پانزده سال لباس او که سفید و بدون لکه بود مانند روپوشی از یک نقاشی هنری به نظر برسه که با لکه های متفاوت اما دائمی پوشیده شده این سومین واقعیت گناه رو به تصویر می‌کشه بهای گناه آثار زخم و لکه‌هایی که بعضی از اونها پاک نشدنی و دائمی هستند. گناه عواقب به خودش رو داره چیز بعدی که می دربارهش دربارش صحبت کنیم خبر خوبیه سواقیت نجات ما خبرهای بد رو شنیدیم سواقیت درباره گناه که عبارت بودند از اینکه گناه مکافاتی داره گناه قدرت داره و گناه بها داره و حالا چیز بعدی که ازش صحبت می کنیم خبر خوش نجات انجیل هست به سه واقعیت نجات به دقت گوش کنید. سه واقعیت نجات به خاطر سه واقعیت گناه بیشتر به چشم می خوره. ملاحظه کنید که کتاب مقدس ابتدا خبرهای بد رو به شما میگه و بعد خبرهای خوش رو. خبرهای بد به منزله مخملی مشکی هستند که جواهر فروشان برای نشان دادن علماس ها از اون استفاده می کنند. کتاب مقدس درباره سه واقعیت گناه، مکافات، قدرت و بهای گناه صحبت میکنه. و در صدد آماده کردن زمینه ای برای قدردانی از سه واقعیت نجات هست. اولین حقیقت نجات اینه که ایسای مسیح مکافات گناه رو برداشته. کتاب مقدس به این انجیل یا خبر خوش میگه. انجیل تنها راه حلیه که خدا برای مکافات گناه داره. ایسا تمام شب رو با عالم یهودینی قدیموس سپری کرد، ضمن صحبتهایی که با او داشت به او گفت که من تنها پسر خدا هستم. من تنها راه حل هستم و تنها ناجی از طرف خدا هستم. پدر آسمانی هیچ راه حل یا ناجی دیگه ای نداره. وقتی واقعاً میشنید که عیسی به نیقودیموس چی گفته، میفهمید که عیسی بقیه از مذاهب رو به خیابونی بمبز تشبیه کرده. شما یا به عیسی باور میکنید یا باور نمیکنید. وقتی عیسی اون حرفها رو به نیقودیموس زد داشت یکی از متاسبان ترین اظهاراتش رو بیان میکرد. انجیل ایسای مسیح تنها راه برداشته شدن مکافات گناه از زندگی من و شما رو نشون میده انجیل ایسای مسیح اولین واقعیت نجاته دومین واقعیت نجات این خبر خوشه که روح القدس قادره که قدرت گناه را از زندگی من و شما دور کنه این بخشی از پیغام بزرگ پولس در کتاب رومیان هست یوهننای رسول در اول یوحنا چهار چهار به ما میگه که آنکه در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. شما باید یقین بدونید که گناه قدرت داره و اون قدرت بسیار عظیمه بعد از قدرت خدا هیچ قدرتی در دنیا به اندازه قدرت گناه و قدرت شریر و شیطان نیست اما خبر خوشینه که قدرت خدا عظیمتر از قدرت شیطان و قدرت گناه است. پولس رسول میگه ما میتونیم به خاطر روح القدس برتر از پیروزمندان باشیم ما نباید در گناه یا تحت قدرت اون زندگی کنیم. وقتی فیض خدا رو دریافت می‌کنیم، میتونیم در, می می در زندگیمون در برابر قدرت گناه برتر از پیروزمندان باشیم. پولس قسمت اول نامه رومیان رو با این آیه در باب پنج خاتمه میده. پس چون از راه ایمان پارسا شده شده ایم، میان ما و خدا به واسطه خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است. ایسا مشکل مکافات گناه رو حل کرده. پولس بخش دوم رساله رومیان رو با رومیان پنج دو شروع میکنه. ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم. ما در خدا شادی داریم اما این تنها چیزی نیست که داریم. ما به واسطه ی به عطایای الهی دسترسی داریم. به قدرت روح القدس که برای ما این امکان رو فراهم میکنه که در این دنیا طوری زندگی کنیم که خدا رو جلال بدیم. دومین خبر خوش اینه که قدرت روح القدس عظیمتر از قدرت گناهه. درک سومین حقیقت نجات کمی پیچیده است و اون عادل شمرده شدگی هست. سومین حقیقت نجات مربوط به لکه ها و آثار زخم ناشی از گناه میشه. بهای به گناه در این بود سوم از نجات حتی به نظر میرسه که خدا هم در نظر مردم مشکلی داره و خبر خوشینه که در نظر خدا حتی لکه ها و آثار زخم های گناه مشکل نیستند. کلمه عادل شمرده شده یکی از زیباترین کلمات در کتاب مقدس هست. این کلمه مختص عهد جدید نیست. عادل شمرده شدگی کلمه کتاب مقدسیه و داوود هم این کلمه را در مزمور 51 و یک برده. یادتون باشه وقتی که تواریخ رو با دوم سموئیل و پادشاهان مقایسه می کنید متوجه بشید که تواریخ همون دوره تاریخی رو در بر می‌گیره که دوم سموئیل و پادشاهان رو شامل میشد. تواریخ مثل مرور کردن بخشی از تاریخ هست. وقتی تعجب میکنیم که چرا خدا اون دوره تاریخی رو دو بار در فاصله هزار سال قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد تکرار میکنه میبینیم که او میخواسته چیزهای زیبایی به ما بگه مفسرین به ما میگن که سموئیل و پادشاهان اون دوره از تاریخ رو از دیدگاه انسان دربر گرفت اما تواریخ اون دوره از تاریخ رو از دیدگاه خدا ثبت کرد آلمان قدیمی تواریخ رو موارد از قلم افتاده نامیدند چون اونها مجذوب اون قسمتی بودند که خدا وقتی کتاب تواریخ رو می نوشت از قلم انداخته بود تمام اون بابها در دوم سموئیل درباره به گناه داوود با ما صحبت میکنه وقتی که در تواریخ در مورد داوود میخونید به هیچ قسمت از اون داستان کثیف حتی اشاره نشده گناه داوود در کتاب تواریخ حذف شده چون که داوود به گناهش اعتراف و توبه کرد تا جایی که به خدا مربوط میشد گویی اصلا داوود گناهی نکرده فرض کنید که خدا داستان زندگی شما را در یک نوار کاست ضبط کرده و وقتی این بخش از زندگی گناه گناهالود شما میخواد پخش بشه خدا نوار رو قطع میکنه و بعد از بابهای گناه دوباره نوار رو میچسبونه تا وقتی که داستان زندگی شما رو دوباره میبینه اصلا گناهی در اون وجود نداشته باشه گناه شما نه تنها بخشیده شده بلکه گویی اصلا هرگز گناهی اتفاق نیفتاده و این همون عادل شمرده شدگی هست. اشاره نکردن به گناه داوود در تواریخ شاهدی بر این مسئله هست که قسمت گناهالوت حصف شده کتاب مقدس شرحهای زیادی در مورد مفهوم زیبای عادل شمرده شدگی داره در ارتباط با این مفهوم عبارت در نظر او 150 بار در کتاب مقدس تکرار شده در نظر خداوند گویی هرگز من مرتکب گناه نشدم و نه لکه‌ای هست و نه جای زخمی و نه اثری از گناه من به هر حال عادل شمرده شدگی دو بود داره اگرچه عادل شمرده شدگی در نظر خدا مهمه اما گاهی در نظر مردم هم مهمه فرض کنید شما مرتکب قتلی شدید و من توی زندان به ملاقات شما اومدم و شما به خاطر ملاقات من به عیسی مسیح ایمان میارید در نظر خدا مثل این هست که شما هیچ گناهی مرتکب نشدید و قتلی انجام ندادید و اما آیا ایمانتون به عیسی مسیح به این معنیه که شما میتونید آزاد بشید میتونید همراه من از زندان خارج بشید چیزی به نام عادل شمرده شدگی در سطح افقی هست. عادل شمرده شدگی میتونه هم در بود عمودی و هم افقی باشه. ما باید در نظر خدا عادل شمرده بشیم و در نظر مردم هم عادل شمرده بشیم. در نظر خدا شما هیچ مشکلی ندارید. چون که عادل شمرده شدگی اثرات گناه رو از بین میبره. وقتی خدا به ردای شما نگاه میکنه که نشاندهنده زندگی شماست، و پر از لکه ها و آثار گناه است خدا اون ردای لکهدار شما رو با ردای تمیز و بی لکه مثل ردای عیسی عوض می کنه و در اون هیچ لکه ای نمی بینه. به این دلیل که کتاب مقدس میگه برو و دیگر گناه مکن. و در جای دیگه میگه بهتره که گناه نکنی چون لکه ها بر روی ردای شما به جا می مونه و نیز لکه بر روی دیگران از گناه شما میمونه که در نظر مردم پاک شدنی نیست. یک بار به منزل شخصی دعوت شدم که 83 سال سن داشت. او در سن 82 سالگی آورده بود و این یک اتفاق نادر هست. بعد از نجات او که کاملا حقیقی بود، خانمش مرا صدا کرد و گفت: "باید بیای و با شوهر من صحبت کنی. تنها کاری که او میکنه اینه که میشینه و گریه میکنه و چیزی درباره نجاتش نمیگه." پس من به دیدن این عزیز رفتم وقتی که او تونست بر احساساتش مسلط بشه گفت: بچه های من بچه های من گفتم بچه هاتون چی شدن؟ و او گفت که چه پدر وحشتناکی بوده و چقدر با خشونت با فرزندانش رفتار کرده و به گفته خودش او زندگی اونها رو تباه کرده بود. دوتا از بچه هاش در بیمارستان روانی بودند و او باور داشت که مسئول زندگی غمانگیز اونهاست. این مرد تغییر کرده بود و در نظر خداوند هیچ لکه و هیچ مکافاتی نمانده بود. اما در مورد بچه هاش و عواقب گناهی که او در مورد بچه هاش مرتکب شده بود چی؟ آثار زخم وحشتناکی در زندگی فرزندان او به جا مانده بود. چیزهایی هستند که شما نمیتونید از بین ببرید. این خصوصا در مورد سومین حقیقت گناه صدق میکنه. بهای به گناه گذافه و آثار اون گاهی محب ناشدنی. گناهان اکثرا با هم همراهند و یا به قولی با هم دو قلو هستند. مارتین لوتر گفته اکثرا اوقاتی که ما گناه میکنیم با کس دیگه ای گناه میکنیم ما اونها رو هم به طرف گناه میکشیم و بعد وقتی ما تغییر میکنیم اثراتی که در زندگی اون اشخاص به جا میمونه چی میشه این یک مشکله به این دلیلی که کتاب مقدس میگه من این چیزها رو برای شما مینویسم تا گناه نکنید گناه نکنید گناه رو انتخاب نکنید یه بار شعری میخوندم که اسمش نزا در آسمان بود مضمون این شعر داستانی به این ترتیب بود. ای در آسمان در جریان بود و دو تن از مسنترین اونها داشتن با هم بحث می‌کردند که کدام یکی از اونها بزرگترین نشان فیض خدا هستند. اونی که یک ساله بود گفت من بزرگترین نشان فیض رو در آسمان دارم. من یک سال زندگی وحشتناکی داشتم و در بستر مرگ بر ایسای مسیح ایمان آوردم و او منو از زندگی ترسناکم نجات داد. درست مثل اون دزدی که کنار مسیح مصلوب شد من بزرگترین نشان فیض در آسمان هستم. اما دیگری بحث می و می گفت نه تو اشتباه می کنی. من بزرگترین نشان فیض در آسمان هستم. من در یک خانواده مسیحی به دنیا آمدم و در جوانی تصمیم گرفتم که مسیح رو پیروی کنم. هرگز در خوکدانی دنیا زندگی نکردم. هرگز در راهای کسیف و منجلا به گناه نیفتادم. تو فقط فیض رو دریافت کردی و با فیض مردی؟ من نجات با فیض رو دریافت کردم و با فیض زندگی کردم و فیض رو نگه داشتم. خدا من از گناهان زیادی در طول زندگیم حفظ کرد. بنابراین من بزرگترین نشان فیض هستم. پس هر لحظه بالاتر می گرفت و اونها نمیتونستند به نتیجه برسند. پس از فرشتگان خواستند که قضاوت بکنند. فرشتگان بعد از مشاوره زیاد به یک نتیجه رسیدند. اونها گفتن، مرد دوم بزرگترین نشان فیض در آسمان هست خدا نه تنها او را از مکافات گناه نجات داد بلکه او را از قدرت گناه و بهای گناه نیز نجات داد بنابراین او بزرگترین نشان فیض هست من از کلیساهایی وحشت دارم که این توهم را دارند که به افراد جوان میگند اگر اونها قبل از نجاتشون و ایمان به مسیح آدم حقباز و بذکاری نبودند هیچکس نخواهد خواست به شهادت اونها گوش کنه. و وقتی اونها شهادت بدن مردم خمیازه خواهند کشید اما اگر یکی از این افراد روسوا و بدنام رو بیارید که شهادت و داستان زندگیش رو بگه شما میتونید تالاری پر از جمعیت داشته باشید چون این چیزیه که مردم میخوان بشنوند. این همه تعقیب رو میخوان توی زندگی مردم ببینند. این اشتباه بزرگیه بزرگترین داستان اینه که از مکافات شرارت از قدرت گناه و بهای گناه حفظ بشی گناه چیز خوبی برای شنیدن نداره. مزد گناه مرگه. عواقب گناه هیچ چیز خوبی در نداره. خدا میتونه از نتایج گناه ما استفاده بکنه به شرطی که مثل داوود و اون عواقب واکنش نشون بدیم. خدا میتونه سالهای ملخ‌خرده‌ی ما را به ما برگردونه. خدا میتونه زخم‌های زیادی رو شفا بده و لکه‌ها رو پاک کنه. اما لکه‌ها و زخمهایی از گناه هستند که پاک نشدنی و غیر قابل بازگشتند به این دلیل که کتاب مقدس میگه بهتره که گناه نکنی برو و دیگر گناه نکن به زنی که در حین زنا دستگیر شده بود گفت من تو را محکوم نمی کنم اما عیسا در یوحنا 8:11 این رو هم گفته برو دیگر گناه نکن چرا که اون زن رو دوست داشت هرگز به فرزندانتون این عقیده رو القا نکنید که بهتر گناه بکنید و بعد از زندگی گناه آلودت نجات پیدا بکنی بلکه بگید بهتره که گناه نکنی این رو با زندگی داوود تطبیق بدید تمامی کتاب مقدس سه حقیقت گناه رو به ما میآموزه گناه مکافات داره گناه قدرت داره و گناه بهای وحشتناکی داره سه حقیقت گناه رو در زندگی داوود دیدید سه حقیقت گناه در زندگی داوود کاملا مشهوده شما میتونید مکافات گناه رو در زندگی او ببینید به این دلیلی که داوود بسیار علاقمند بود که اعتراف و توبه کنه او ایمان داشت که اعتراف و توبه مکافات گناه را از زندگی او محو میکنه خیمه پرستش تمثیلی از این آیات هست و در اونها صدق میکنه قربانی در خیمه پرستش هم اون آیات رو به تصویر میکشه مکافات گناه باید برداشته بشه به این دلیل که دست شخص گناهکار باید بر روی سر حیوانی قرار می گرفت که قرار بود قربانی شود. گناه گناهکار به این وسیله بر سر حیوان قربانی منتقل می شود. به این وسیله قربانی ها مشکل مکافات گناه را حل می کردن. گناه قدرت داره. ما این تمثیل رو هم در زندگی داوود مشاهده کردیم. پولس وقتی در اول قرنتیان باب ده گفت پس اگر گمان می‌کنید، استوارید به هوش باشید که نیفتید، احتمالا داوود رو در نظر داشته. اگر مردی مثل داوود سقوط کرد، بهتره که قدرت گناه رو دست کم نگیرید و بفهمید که تنها یک قدرت در زمین وجود داره که میتونه مانع قدرت گناه بشه و اون قدرت خدای روح القدس هست ما میبینیم که زندگی داوود مخصوصاً در دوم سموئیل باب 11 تا 18 تمثیلی هست از سومین حقیقت گناه یعنی بهای گناه. گناه بهای خودش رو داره. داود چنان مرد بزرگی بود که توانست از عهده تعدیب خودش بر بیاد. اما به اعتقاد من بدترین قسمت بهای گناه داوود که باید پرداخت میکرد، مرگ پسرش ابشالوم بود. تمامی عواقب گناه داوود را ملاحظه کنید، مرگ نوزادش از همپاشیدگی خانوادش و تمامی داستانهای قمنگیزی که او تجربه کرد، نشون میداد که داود بهای بسیار سنگینی بابت گناهش پرداخت. به این دلیلی که کتاب مقدس عواقب گناه داوود را به صورت جزئیات ریز و وحشتناک گزارش کرده دلیل دیگری برای اینکه داستان گناه داوود در کتاب مقدس اومده، این خبر خوشه که خدا برای داوود سه حقیقت نجات رو مهیا کرده بود خدا راهی مهیا کرد که به اون وسیله داوود از احساس تقصیر و مکافات گناهش رها بشه این به طرز شیوایی در دوم سموئل در تجربیات داوود و در مزامیر داوود به تصویر کشیده شده. داوود پاسخی برای دوعاش دریافت کرد که می گفت خدا یا قلبی تاهر در من بیافرین. داوود از خدا این قدرت را گرفت که اونطور که شایسته است زندگی کنه. در 24 سال بعد داوود بزرگترین پادشاهی شد که اسرائیل به خودش دیده بود. در نظر خدا حتی لکه های گناهش نیز از بین رفت. اما خدا می ما از طریق داستان گناه داوود متوجه بشیم که بهتره که گناه نکنیم. داستان گناه داوود همون کلمات خداوند ایسا رو به همه ما میگه که برو و دیگر گناه نکن. آیا سه واقعیت نجات رو در زندگیتون تجربه کردید؟ اگر نکردید، لطفا امروز بر عیسی مسیح اعتماد کنید تا بتونید سه واقعیت حیرت انگیز نجات رو تجربه کنید. دوستان، چه درس بزرگی. همه ما، با سه واقعیت گناه لعنت شدیم اما همه ما میتونیم با سه واقعیت نجات برکت بیابیم چه حقیقت با شکوهی دعای ما اینه که هر کسی که با ما در مطالعه کتاب مقدس همراه سه واقعیت نجات رو تجربه کنه اگر تا کنون سه واقعیت نجات رو تجربه نکردین امروز میتونین و اگر تجربه کردین امیدواریم که این هفته این خبر خوش رو دست کم با یک نفر در میون بذارین. تا برنامه بعدی امیدواریم آرامش و شادی خداوند رو تجربه کنین و در اطمینان نجاتتون گام بردارین.